بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الأنبياء خاتم النبيین وآلی وصحبه اجمعین اما بعد کتابی که دارست داد خوندنش هستیم کتاب شماël تألیف امام هست یکی از صاحبان کتاب ششگانه اهل سنت کتاب ششگانه وقتی گفته میشه منظور اون حالا بعضیها اشتباه میگن صحاحوستن نه صحاح ست نیست کتب ست هست. صحیحه ما داریم، صحیح بخاری و مسلم به علاوه چهار تا کتاب، اولیش سنن عبی داود، بعد سنن ترمیزی، بعد سنن نسایی، بعدم هم سنن ابن ماجه، ابن ماجه قزوینی. بین شش تا کتاب میگن کتب و اینها این ها کتابای معتبری نزده اهل سنت، معتبر کتابای مستندیه که بر اساس عبواب فقهی نوشته شده. هر چند کتاب دیگر هم هست مثل مصندم و محمد و دیگر کتاب هم هست ولی خب این, این شش تا کتاب خصوصا خالی از احادیث موضوع الا سنن ابن ماجه که یکی دو تا فقط اشتباها در کتابش آورده به خاطر همین بعضی از علما جزء کتب سته سنن ابن ماجه رو حساب نکرن چرا یه دونه هم توش توشون نباد باشه یعنی همون اون یه دونه هم مقبول نیست نزد موهن گفتن خیلی از اونها سخت کردن این حد یعنی یک دونه هم حدیث موضوع هم براشون سخت بوده پول اون احادیس هم والا شاید دو یا سه عدد بیشتر نباشه در سنن ابن ماجه ولی خب گفتم یعنی اشتباها مشتبه شده برش اون راوی رو نشناخته و حدیثش را نقد کرده در سونانش بلی خب اینا کتابه معتبر یا حدیث دروغی توش نیستن و ائمه ایش ائمه ایمی معتبرین نزاهه السنت خاطر همین از این کتابها یاد میشه به کتب الستة یکی از اون اصحاب این کتابها امام ترمیزی هست یکی از شاگردین امام بخاری محسوب میشه امام ترمذی رحمه الله واسكنه فسيح جنات کتاب را خاص اوصاف رسول الله صلی علیه و آله احادیث در اون جمع میکنه و خیلی از علما اومدن تمجید کردن به بزرگی از این کتاب یاد کردن مثل ملا علی قاری و دیگر علما مثلا ملا علی قاری میگه و من احسن ما صنفی شمایله و اخلاقی صلّا و سلام کتاب الترمذي المختصر الجامع في سيره علي الوجه الاتمي بحيث ان الا آخره من هر فکر میزنه بهت کتابی که در شمایل و اخلاق رسول الله صلّا و سلام بشوده کتاب شمایل الترمذي هست امام الترمذي رحمه الله واسکناف سیح جناته این کتاب را اساسش پنجاه باب قرار میده پنجاه شش تا موضوع براش میذاره برای آحادیسی که تو این کتابه پنجاه شش تا باب ولی میخوایم به تک تک اون اباب رقمی که اینجا روی احادیث گذاشته شیخ عبدالرزاخ 415 تا حدیث شیخ البانی رحمه الله که تخریج کرده 352 حدیثی آلا چرا حدیث هشتم که اومد اونجا به وضوح میتونیم بفهمیم خصوصا اینکه بعضی از احادیث البانی رحمه الله مثلا که تیک تیکه, تیکه امام ترمذی در این کتاب جاهای مختلفی آورده اون قطعه ها رو یک جا در یک حدیث میاره و اطرافش رو حزم میکنه یعنی دیگه مابقیش رو حزم میکنه یک جا اون روایت رو کامل میاره مثلا ما حدیث هشتم که برسیم می‌بینیم قسمتی از حدیث هست قسمتهای دیگرش در ابواب دیگر آورده به خاطر همین این شماره شما می‌بینید این تفاوته درش هست اینجا 450 تا و اونجا نزد البانی 352 عدد حدیث داریم هیچ تفاوتی بین دو دکتاب کتاب نیست فقط اینه که بعضی از روایت ها تیکه تیکه شده جاهای مختلف آلبانی اومده اون تیکه ها رو جمع کرده در یک حدیث یک جا آورده یعنی همون حدیثی که تیکه, تیکه قرارش داده امام ترمذی آلبانی اومده یک جا در یک روایت خلاصش کرده و بخیش رو حذف کرده این به خاطر این میگم که بعضی ها مثلا شاید مثلا ما بگیم حدیث هشت مثلا برند پیش البانی ببینن که نه حدیث شماره اینه چرا این تفاوت هست یا اونجا هفته شماره ها بین اون کسانی که مختصر کردن یا بین کسانی که اومدن جمع آوریش کردن این شماره مثلا آلبانی رحمه الله آمده مختصرش کرده سانانی رو هز کرده و روایت هایی که پراکنده بوده را یک جا اوورده. کسان دیگر نه همونطور که اینجاشه خبردار ازضاق داریم حدیث را با اسناد میاره. بعد که با اسناد اووردد علت های اسناد را بررسی میکنه. میگه این اسناد این اب درش هست صحیح یا ایفه مثل همین اون شب شبشااد داشته باشیم یکی دو تا حدیث ضعیف هم هست. داره یک مطلب قبل از اینکه شروع بشه کتاب چه فرقی هست بین حدیث ضعیف و موضوع خیلی ها مطلب رو قاطی میکنه. این کتاب اینجا هست و این کتاب فضای اعمال درسته خیلی ها نمیتونن تشخیص بدن که مثلا این فضای اعمال آیا درسته که ما حدیث که در این فضل اعمال از نمیدیم است نمیدونیم صحت و سخمش میتونه به مردم نقل بکنیم یا نه خیلی ها نمیدونن میگن که در فضل اعمال درسته که علما گفتن مجابز دادن حدیث ضعیف را نخر کنی حدیث ضعیف را نخر کنی بله این چیز در مصطلح حدیث هست علم مسموع علم به اسم علم حدیثی علم مصطلح حدیث در علم مصطلح حدیث ولی ما اختلاف دارن که آیا ما اجازه داریم حدیث ضعیف را در فضای لعمال ها نه که حکم ازش برداشت بکنیم نه مثلا در نماز درکت قبلی فج حدیث داریم در تأکید بر فضیلت اون نماز یک حدیثی اومده سندش ضعیفه ولی خب نماز خودش مسنون هست یعنی سنت هست قبل از فجر نه اینکه یک سنتی جدید به ما بیاره نه در فضیلت اون حدیثی بیاد این فضیلت میگن چی فضایل اعمال این حدیث ضعیفی که در اون فضیلت اون عمل اومده اون عملی که ثابته اصلش ضعیفه نه اینکه عمل جدیدی باشه حالا این فقط گفتم از لحاظ علم دارم میگم خب الان آیا درسته که ما حدیث دروغی را به مردم نقل بکنیم در فضایل اعمال نه آیا دروغ مثل زایفه یعنی جزء احادیث ضعیف هم محسوب میشه دروغ یا نه آیا دروغ ام جزء احادیس ضعیف محسوب میشه یا نه یک مثلا من اشاره کردم گفتم کتاب سنن ابن ماجه هست از رده کتب معتبر اهل سنت بعضی خارجش کردم به خاطر چی یکی دو روایت حدیث دروغ یکی دو تا روایت حدیث دروغ گفتن این کتاب دیگه معتبر نیست چرا باید نقل بکنه باید میرفت تحقیق میکرد بعد از علما میپرسید بعدا این کتابو اون وان یک کتاب معتبر معرفیش می‌کرد بعضیا این انتقادی کردن گفتیم که عذر و علت ابن ماجه چی بوده خب الان بر برگردیم به اصل مطلبمون چه فرق تفاوتی هست بین ضعیف و بین دروغ ضعیف احتمال صحتش هست احتمال صحیح بودنش از یک راوی ضعیفی حافظش ضعیف ترهمی بهش دست داده یا یک بدعتی درش هست مثلا ولی که این درش ضعفه حالا این ضعف شاید کم باشه و شاید زیاد باشه که انشالله خواهیم داشتم تو ضمن احادیث این بهش میگن حدیث ضعیف حدیثا بهش گفته میشه یعنی رسول الله اصلا نسبت داده میشه این حدیث یعنی فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم ولی ما در نسبت شک داریم به خاطر ضعف یکی از راویان خب الان یکی از اون راویان شد دروغگو یعنی مثلا ما حدیثی داشتیم در اسناد اون راوی باشه که دروغگو باشه راوی که ما یقین داریم بر دروغش اینجا هست که ما حکم وضع حکم دروغ به اون روایت میدیم وقتی که اون راوی اون روایت که نقل شده برای ما اون روایت ما یقین داشته باشیم که راویش دروغگو هست اینجا هست که بر ما حرامه اون دروغ را به مردم نقل بکنیم دلیل حدیثه مسلمه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماین من رو عنی حدیثا من رو عنی حدیثا يرى أنه كذب، فهو أحد الكذبين. ودروات فهو أحد الكذابين. الله هاردو معنا شو ما بيجمع. برهاردو فاجي كروات شدة. من روى عني حديثاً كسيك أزمان حديثي نقل هنا كدروغ واشا يرى أنه كذب، فهو أحد الكذابين. أو يعني ماني كناقلة من حديث ربيت ناقبك هنا. من دروغ ربيت ناقم كنا. من يك يازن دروغنا. و در روایت بعدی دیگری که روایت شده فاو احد الکدب این هم یکی از دروغگوان یعنی من از دروغگویانم در اونجا با اون وجه من یکی از اون دو تا دروغگوام دروغگوی اولی که حدیث را گفته و دروغوی دومی که من اینجا به شما این دروغ را نقش میکنم خب این چی به ما میرسونه اینکه من اجازه ندارم حدیثی را قبل از تحقیق به مردم بگم حدیثی را قبل از تحقیق من اجازه ندارم به مردم بگم خصوصا وقتی که دروغ باشه. دیگه طرف حسابم کی رسول الله صلی الله علیه و آله روز قیامت خصم رسول الله صلی الله علیه و آله چرا علما سخت گرفتن نکون مسئله فراتر از بحث یک روایت الا به مردم نقد کردیم و نکردیم یعنی فراتر از این قضیه یک مبحث اعتقادیه ابن کثیر میاره در علوم حدیث ما در سال اول عالی تدریس میکنیم این قضیه رو و علما در کتابه حدیثیشون آوردن علوم حدیثیشون مثلا معرفت علوم حدیث ابن سلاح میاره ابن کثیر بعد خلاصش میکنه نووی میاره در تدبیر و راویش و الی اخر علما آوردن این قضیه که حکم دروغ گفتن بر رسول الله ص چیه؟ خیلی علما حکم کفرشو دادن. کسی بر اساس عمدن دروغ بگه کافره. کسی که بیاد به خودش اجازه بده بر اساس اصلا دروغ به بنده کافره. چرا؟ گفتن چون دروغ بر رسول الله دروغ بر الله جل وعلا هست. تو الله جل وعلا در قرآن میگه و من اظلم ممن افترى على الله كذبا. ظلم دیگه بالاتر از دروغ بستن به الله نیست. و دروغ بر رسول دروغ بر الله جل وعلا هست. همین علما سخ گرفتند. ولا لما سخت گرفتن نقل حدیث به مردم نقل حدیث به مردم بخاطر همین ما بخاری از سخت میگیره در صحیحش میگه باب ما جاء في العلم قبل القول والعمل قبل از عمل علم انسان حرفی میزنه با علم حرف زنه بعد میاره فرمودی الله جل و علا فعلم انه لا اله الا الله فعلم بدانه حتی توحیدش تو بدونی الان ما هم داریم می کنیم احادیث وصف الله صلی الله سلام ما علم رسول الله صلی الله علیه و بس بکنیم نمیتونم من بگم که تو خواب رسول الله صلی الله علیه و سلام دیدم این قصه رو من جریان و بارها تعریف کردم و اینجا هم تعریف میکنم یه بنده خدایی قبلا عظام میگفت. یه روزی دیدم به مسجد نماز نمیخونه. گفتم چرا مسجد نماز نمیخونی؟ نمی اینا میای. گفت که من که رو تو خواب دیدم. گفتم به وقت تو خواب دیدی؟ خب بعدش گفته به من که تو دیگه نماز نخونی لازم نیست که نماز بخونین. گفتم عجب رسول الله صلی الله علیه و سلم بهت گفته نماز نخوان. میگه میشه پیغمبر خدا بیاد کسی که مأمور بوده بیاد به خلق الله ابلاغ بکنه که نماز بخونن. و اخیم الصلاه اونها بگه و قران رو بیاد براشون تلاوت بکنه که الله از شما خواسته که نماز را برپا با بدارید بعد بعد اینجا بیا تو بیای بگی من تو خواب دیدم که پیغمبر گفته که تو نماز نخون میگه میشه گفتم خب الان سوالی ازت دارم رسول الله صلی الله علیه و سلم چطور دیدی یعنی یک از مسائلی که ما داریم تو کتاب همینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماین کسی که مرا در خواب ببینه حق اون خوابش حقیقتا مرا دیده دی چرا میگه نه شیطان نه یتمثل به چون شیطان به شکل من در نمیاد به شکل من شمائل من حالا یکی از فواید شمائل خوندن همینه تو وقتی که اوصاف رسول الله صلی الله علیه و آله بعد اون اوصاف رو تطبیق می‌دی به خودت اوصاف رو تطبیق می‌دی به خودت آیا اون اوصافی که تو دیدی همین اوصاف پیغمبره چون رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن به شکل من در نمیاد یعنی شاید شیطان به شکل کسی دیگه در بیاد بعد بیاد بگم من پیغمبرم به شکل خود رسول الله صلی الله علیه و در نمیاد ولی به شکل کسی دیگه در میاد مخاطره همین من فوراً به ذهنم اومد گفتم برادر میتونی وصف رسول الله رسول الله علیه به من بگی چطور بود؟ گفت که بله رسول الله رسول الله علیه وسلم دیدم لباس بلوچی پوشیده بود خال مشکل نیست لباس بلوچی پوشیده بود دوم شهره شو گفتم به من بگم گفت که چهره بلندی داشتن درازی داشتن سبز با ریش های آنکارد شده کوتاه گفتم عوض بیلهم نشیطان رجیب این رسول الله علیه وسلم نیست رسلاس از هم چهرش موارد بگردیم و رسول الله از هم ریشاش پرپوش بود صحابه میگه از پوش کن نماز میخونیم و ریشای پرپوش سر رسول الله از هم میگه دی تو شیطان دیدی برادر بدم بالفارزم حالا تو اشتباه کردی یعنی با رسول الله از هم اشتباهش گرفتی تو رسول الله از هم که دین کامل شده که نمیاد که دیگه تشریع بکنه برای من و تو تو خواب که بیاد دین رو عوض بکنه این بیاد بگه من تو خواب دیدم اون بیاد بگه من دیدم تو خواب نماز پنج بعده بکنیم یه پنج جاه میگه میشه نه میشه دین کامل شده الیا ما لکم لكم دينكم و ترى همین، این بحثی که تو بحث فضای اعمال حدیث موضوع هم میشه همین قضیه مطرح میشه که امام شافعی هم در کتاب رساله میاره از باب استحسان که میگه من استحسنا في الدين فقد شرع من شرع فقد کفر استحسان در دین اینکه تو بیای یه چیزی را بدین نسبت بدی و خوب ببینی ببین این خوبه که ما بدین بچسبونیم نیست تو دین ولی تو بیاین استحسانش بکنی خوبش بپنداری مثل بعضی از اهل تصوف گفتن که ما که دروغ برای رسول الله صلی الله علیه و میگیم نه بر علیهش برای دینش میگیم برای به نفع دینش که بیا مردم رو جذب کنیم به دین نه که بیا مردم رو از دین بزنیم که ما برای رسول الله صلی الله علیه و داریم دعوت می برای دینش خب این بنده خودم نفهمیده که رسول الله صلی الله علیه و آله من کذبه علیه من کذبه هر کسی دروغ بگه فلیتبوا مقعده منار هر کسی برمن دروغ بنده جاش جهنم هر کسی دروغ بگه چرا چون الله جل و علا در قران به ما ابلاغ کرده گفته اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمت دین کامل شده یعنی چه دین کامل شده یعنی دیگه نیازی به کسی نیست بیا دروغ ببنده بیا دروغ بگه به نفع دین چنانچه داشتیم در درس قبلی گذشته هر چی خیر هست رسول الله علیه و به ما گفته و هر چی به ما گفته که نزدیکش نشه پس خیر آن چیزی هست که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم به ما اقلاق کردن به اون اکتفا بکنیم و از دروغ پرهیز بکنیم دست بکشیم چون اونجا خسممون رسول الله صلی علیه و وسلم میشه و این قضیه دین دیانتها سنگینه چون بعضی ها بهشون میخوره که شما یک امتی یک جماعتی کارهای خوبش رو نادیده میگیرید کارهای خوب را الله جل و علا هست که ترازون میکنه روز قیامت موازین حق بد اصل الله بد اصل من شوانيست من نه بهش مال من ان منم من حساب حسابو کتاب واقع میشم نزد الله جل وعلا منم نمیدونم مسیرم کجاست فقط اون چیزی که یاد گرفتم اون چیزی که علما گفتن تو کتابه هست وظیفه ابلاغ بکنم این مسئله مسئله علمیه علم حدیثیه یعنی علما نوشتن چه از احناف چه از شافعی چه از مالکی مذهبهاش خصوصا شافعی مذهب ها که اصول این علم را تدوین کردن مثل ابن الصلاح شافعی مذهب نراويش و فقه مذهب اصول این علم را امن كثير شافی مذهب اصول این علم را شافی مذهب ها تدوین کرد علم حدیث و این قوانین را گفتن موضوع اصلا حدیث نیست چرا چون ما یقین داریم بر دروغ بودنش چرا یقین داریم چون راویش اون راویش دروغ دروغگو است مثل من روایت من بهتون میگن بعضی از متعصبین حالا تو احناف بوده تو شوافع بوده بس این مساله من نه ذهن میارم تو کتابشون هست دروغی از شافعی‌ها بعدش می‌آید از احناف. اومد یک روایت روورد بر علی امام شافعی رحمه الله. چی روایت؟ گفت که بنص اساساً نسبت میده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث با اسناد فلانی فلانی فلانی از ابوهریره از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودن سیعهتی علی امتی زمان یخرج علیهم رجلن یقالو له ابن ادریس هو اشد علیهم من ابلیس. سیاتی علی امتی زمان یک روزی میاد بر امت من شخصی میاد که بر امت من از ابلیس هم بدتره. به اون گفته میشه ابن ادریس یعنی ابن ادریس شافی محمد ابن ادریس شافعی تحسن این دروغه این شخص اومده که این لکه رو برای ما شافعی رحمه الله بذاره ولی این دروغو هست واضحه خب الان این شخص که ما فهمیدیم با این روایت شده دروغگو روایتش هم صریح در دروغ بودنش اگر از این راوی شما حدیث را بشنوید اجازه دارید بگید این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده نه حرامه چرا چون واضحه بر ما که چی دروغگو هست خاطر همین درست نیست درست نیست که ما دیگه بیام به مردم بگیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین گفتن مگر این که چی بگیم این حدیثی که این رابی روایت کرده دروغه به خاطر همین علما از قدیم کتاب نوشتن مثل کتاب موضوعات ابن الجوزی تیجانی یک زمانی تو شبکه‌های ماهواره‌ای مناظره داشت با عثمان خمیس و باقر اینا مناظره داشت بعد تیجانی حدیثی را آورد مثل یک از اشتباهاتی که اینجا مؤلف داره صاحب این کتاب مثلا بعض از حدیثا من نگاه کردم نقض کرده از کتاب موضوعات ابن الجوزی موضوعات مجازی باز نمی‌دونم فکر می‌کنن این کتاب کتابی هست مثل کتابی همین به کتاب سته مثل شمائل ترمذی و مثل سنن ترمذی فکر می‌کنن که این کتاب چون احادیث توش هست فکر می‌کنن این کتابه. کتاب کتاب احادیث نه این کتاب ابن الجوزی نوشته برای اینکه امت بر حذر باشن حدیث دروغ را این کتاب جا موری کرده گذاشته تو این کتاب که امت بر حذر باشن کتاب نوشته به اسم کتاب موضوعات این تیجانی اومد تو مناظره گفت که بله این حدیث را شما نگاه بکنید تو کتاب اهل سنت خودشون هست عثمان خمیس بری گفت که تو چی کتابی گفت موضوعات گفت که میید که تا مذا چیه؟ گفت که موضوعات دیگه موضوع نمیم مثل می خویم موضوع نماز موضوع روزه گفت که ای بدبخ موضوع یعنی دروغ حالا اهل سنت این حادیث دروغ رو جمعوری کردند که امت بر حذر باشن نه که به مردم نقل بکنن که کسی باو عمل نکنه. این است که این تفاوت را ما باید بدونیم بین حادیث دروغ و حادیث ضعیف به هیچ وجه نقل حیث دروغ جایز نیست به هیچ وجهی من وجود حرامه نقل حادث دروغ برای مردم. اون چیزی که علما اختلاف دارن حدیث ضعیفه که علما اجازه دادن بعضی هاشون بعضی هاشون نه همشون بعضی هاشون اجازه دادن در بحث فضائل اعمال یعنی عملی ثابته مثل گفتیم در وقت قبل از فجر یا نماز خود فجر عملی ثابته بعد حدیث ضعیفی بیاد اون فضیلتی را یاد بکنه که در اون دیگه را حدیث باشه در فضل اون نماز و اون عبادت بحث دفاع از رسول الله صلی الله علیه و سلم میدونی این حدیث نسبتش به رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغه وظیفه تک تک ما است دفاع از رسول الله صلی الله علیه و سلم این وظیفه دینی هست و خصومتی نیست کینه و کدورتی نیست هر کدوم از ما پامو میلغزه هر کدوم از ما اشتباه میکنیم مگر من وقتی که میگم رسول الله ص ریش داشتن و توصیه به ریش گذاشتن کردن مثلا دوستمو مثلا بهش برمیخوره الا ها شیخ منظورش منه نگاه منم کرد تو جلسه گفته که من ریشم کوتاهه پس نمیدونه اومده منو تحقیر بکنه میگه میتونه یقه منو بگیره مثلا بنده خدایی تو مسجد من اونجا ارا را رو درس میدادم بعد ناراحت شده که بله شیخ منظورش منه و نمیدونم منو خاصه تحقیر بکنه نه نه با دل پاک بشینیم بشنویم حسین احادیث رسول الله صلی الله علیه و منافقین تفاوتشون با مؤمنین تو چیه منافق وقتی که حرف رو میشنوید حرف را بر علیه خودش میدید. یحسبون کل صیحته علیه هر چیزی هر آیه هر چیزی وحی بر, شد، بر می میشد بر علیه خودش میده ها هدف ما هستیم. میخواد ما رو تاخیر بکنه میخواد ما رو سرزنش بکنیم. الله جل وعلا دل شماست الله جل وعلا خیرخواه من و شماست و پیغمبرش هم همینطور. بما رحمت من الله لنت لهم قالوا كنت فضلا غليظ القلب لنفض من حولک. ما امجا با نرمی میگیم یعنی نه با بحث علمیه بحث کتاب درس خونده میشه برای اینکه ما معلوماتمون بالا بره برای, برای اینکه ما بدونیم علمامون چی گفتن نه که هر کسی مثلا بیاد از جیب خودش هر چی خنده بیاد بخرد مردم بده این کتابی که خواهیم خوند کتاب شمائل ترمزی میشه دونیم پنگ قسمتش بکنیم قسمت اولش بحث اوصاف رسول الله سلام از اوصاف خلقیش از موهاش و بدنش و شنهاش و رنگ پوستش و الى آخر قسم دومش بحث اون چیزهایی که در خونه داشتن در منزل داشتن از لباس و ذره و غیر شمشیر قسمت سوم بحث اخلاق و آداب و معاشرتشه رفتارشه قسمت چهارم بحث عبادتشه و قسمت پنجم آخر بحث خوابها و رؤیت رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها خلاصه اون چیزی هست که ما در کتاب شمایل ترمزی خواهیم داشت خب بریم به خود کتاب و اولین حدیثی که در این کتاب خواهیم داشت در اولین بابش پس گفتیم این کتاب خصوصا با ترتیبی که ما به ترمزی داشتن صحیح و ضعیفش همه خواهیم خود الوانی معمولا رحمه الله کتاب ها رو تفکیک میکرد مثلا ترمزی را اومده صحیح از ضعیف جدا کرده ولی اینجا این کتاب رو نه این کتاب را صحیح و ضعیف و هم اوورده ما از باب اینکه ضعیفم بدونیم معناشیه هم, بدونی معناش هم علممون بیشتر میشه و هم میدونیم که چی اومده در بخش ضعیف هرچند که بیشتر احادیث این ضعیفی که تو این کتاب هستن احادیث صحیح هم کنارش هست یعنی شما مثلا حدیث خواهید داشت زعیفه ولی کن امت صحیحه با توجه به رواته صحیح دیگری که اومده مد صحیحه ولی اسناد این درش هست این تیوری هم نیست که ضعیف محض باشه خب بریم به اولین باب بابون او باب ما جاء فی خلقی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم اون چیزی که در وصف خلقی رسوله صلی علیه و سلام آمده وصف بدنش، تنش جسمیش اولین حدیثی که اینجا میاره با اسنادم خواهیم خون اونطوری که خود امام ترمیزی رحمه الله اوورده در کتاب شمایلش به همون سبکی که اوورد امام ترمیزی از وصف خلقی رسوله صلی علیه و سلام چهره رسوله صلی اللہ علیه و سلام و تنش که همون طور که علماء میگن خلاصش میکنم میگن که کاملترین، زیباترین و قشنگترین چهره را رسول الله صلی علیه داشته این قشنگی چهره، این زیبایی و روحی که رسول الله صلی اللہ علیه داشتن که تابان بوده از ما هم زیباتر صحابش می چطور بوده؟ چه وصفی اومده؟ در این حدیث خواهیم خود اون چهره‌ای که انسان از دیدنش سیر نمیشه و تک تک شماهایی که اینجا نشستید آرزو دارید که قبل از مرگتون در خوابتون حد رسول الله رسول الله عزیز ببینید. الله به هممون این توفیق رو بده قبل از مرگمون رسول الله رسول الله عزیز سلم با خوشی ببینید. با اون زیبایی و قشنگیش. اون آرستگیی که دلها را اون آرستگی خونک میکنه. روشن میکنه و شکوفا میکنه. قال الإمام الترمذي رحمه الله وأسكنوا فسيح جناته أخبرنا أبو رجاء قتيب بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول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 فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله تعالى على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء إن حديث كشمو إنجا داريد در صحيح بخاري ومسلمم هس اتمينون خاطر داشت بشيط برصحاتش حديث در بخاري ومسلمم هس اسنادش صحيحة همه این علما علما مشهور نزاعی اهل سنت حسن اولیش که از قتیبه رو کنیم قتیبه بن سعید از راویان معتبر از راویانی که از امام مالک مواتر را نقل کردند مواتر امام مالک امام مالک به آخر شیخ استاد ما شافعیه شیخ و استاد ما شافعی وقتی که تو علم حدیث گفتی میشه اسناد ذهبی یا طلایی را معرفی کن گفتی میشه احمد از شافعی از مالک از نافع از ابن عمر این سند تلاییه همشون ائمه حسن احمد امام شافعی امام مالک امام نافع امام ابن عمر هم که صحابیه این سند تلاییه اینجا تو این سند هم مالک دارید که یکی از ائمه معتبر اهل سنت قتیبه اینجا که راوی گفتین راوی موتی مالک نقل میکنه مالک از ربیعه که از بزرگان تابعینه از ابن مالک هم که صحابیه رسول الله صلی الله علیه و این سند وزحه روشن بر صحتش الله غیر از اینکه گفتیم امام بخاری و همچنین مسلم در کتابی صحیحشون این حدیث را نقل کردن حالا بریم به کجا به اون چیزی که انس نسبت به رسول الله صلی الله علیه و به ما بازگو کردن کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ليس بالطويل البائن رسول الله صلی الله قدش بلند و دراز زیاد نبود بلند و دراز قد بلند اون بلندی که ما میدونیم قد بلند خیلی بلند نه که بلند نبود آقا. قدش بلند بود ولی نه اون قد بلندی که از دیگرها خیلی بلند تر باشه نه قدی قد متوسط داشت قدی متوسط میاد در وصف رسول الله صلی الله علیه و سلام خصوصا وقتی احادیث دیگر را کنارش میذاریم وصف انس و وصف براه الصحابی رسول الله صلی الله علیه و سلام هم که در سه هند داریم کنار هم دیگر میذاریم تا اینکه قشنگ اون وصف اون چهره و اون جسم بتونیم تصورش بکنیم كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير نا قدش كوتاه بوت ونا قدش زياد بولان بوت بائن زياد بغترهمي در حديث براب نعازب كخاهيم داشت خهاد ومات عز عازب نعازب رباتك در سيهين كيف رسول صلى الله عليه وسلم باسمه كان الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعة عريض ما بين المنكبين كثل اللحيا إلى آخر كخهاد ومات بعد شاهد رجلا مربوعة مربوعة أصر ميات ربع کسی که قدش متوسطه نه بلند زیاد و نه کوتاهه مربع هاش کتفش عریزه بزرگ شانه‌هاش پهنه. پیامبر صلی الله و آله میان قد بود، قامتش، قد و قواره‌اش قدی نه بلند داشت و نه کوتاه و شانه های دروش و یا چهار شانه کلا گفته میشه درصلای خودمون. یعنی میان قد و قامت بود با شانه های که واسه خودمون بخوام بگیم با شانه های عریضی که گفته میشه چهار شانه یعنی رسول و پهنی داشته. ليس بالطویل البائن ولا بالقصیر بس قد رسول الله ان زیاد بلند بود و نهم کوتاه. ولا بالابیض الامحق الابیض الامحق رسول الله سفید خالص نبود امحق در میشه کفتمیشه اون سفیدی خالص مثل گاج سفیدی انتوری نبود سفید صاف سفید که میدونی من سفیدی پس چی بود سفید نبود؟ سبز بود؟ نه سبزه هم نبود حالا میاد در بازار بود با چرا اومده سبزیگی چه نوع سبزیگی چون رنگ ها متفاوته رنگ گندمی داریم رنگ سفید داریم رنگ سفیدی مایل به قرمزی داریم و رنگ سبزیگی تیره داریم رنگ سیاهی داریم ولی آخر رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا در وصف انس بی که رضی الله عنه میگه ولا بالابيض الاهق رسول الله صلی الله سفید صاف و خالص نداشت ولا بالادم سبزگی هست، سبزی تیره. رسول الله صلی الله علیه و آله سبزی نبود اون سبزی که حالا نه تیرهش و نه کم رنگش سبزی نبود. حالا هرچند که در بعضی روایات آمده از اون سبزیگی سفیدی مایل به سرخیه. حالا چون بیشتر روایت‌ها اینه و چرا این بیشتر علما گفتن به خاطر اینکه بیشتر راویان این تا اینطوری بس بر رسول الله صلی الله علیه و آله کردن. پس رسول الله صلی الله علیه و آله سبزه نبود، سفید خالص هم نبود. از با اول که دیگه سیاه نبود. پس اگر یه کسی اومد تو خواب که من پیغمبرو سیاه دیدم، میگیم که تو رسول الله صلی علیه وسلم ندیدی شیطان را دیدی مثل قصه هم بنده خدا پس رسول الله صلی اللہ علیه سفیدیش خالص و پاک نبود و نه هم سبز بودن بلکه سفیدی که درش یک سرخی هم بوده قرمزی بوده خوصا تو صورتش علیه السلام خب این وصف چهره و رنگ چهرهش ولا بالجعدی القططي ولا بالجعد این وصف موهای رسول الله صلی اللہ علیه وسلم موهای وزویزی تو هم رفته. نداش موهاش اون که یا اون آمیختگی و در هم پیچیدگی و که حالا اینجا داره وصفش میکنه انس رضی الله عنه موهای فر که تو هم رفته باشه زیاد نه اونطوری نبود و نه هم موهاش صاف بوده موهای رسول الله صاف و لخته هم نبوده ولا بسطت صبط موهای ریخته یا موهای لخته هست که صافه رسول الله موهاش صاف نبود پس نه موه های الله وزوز بوده اون وزوزی خیلی کوچک نه بلکه یک انعتافی توی موهاش بوده یک انعتافی یعنی موهاش صاف نبود و نه موهاش فره کامل نه یک فره کمی داشت این وصف موی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم حالا بعضی چیزا هست تو لغت فارسی معادل پیدا کردنش خیلی سخته خب مثلا همین فر یا وزویزی بودن تو فرنگ لغت بخو دنبالش بگردی پیداش نمیکنی ولی خب اصطلاحات روزه به کار برده میشه اون چیزی که مثلا بر ما بخوام ترجمه بکنیم به لغت قدیمی شاد مثلا بگیم در هم پیچیده، جولیده، رسول الله ص تا نبود، در هم ریخته نبود، موهاش پیچ پیچی نبود مثلا، پیچ نفرده بود، مثل پیچ بخوره که در هم دیگه فرو بره نه، موهای رسول الله صلی الله علیه و سلم نه صاف و نه پیچ خورده بود، بلکه موهای یک هست که یک انعطافی درش بود، حالا تا کجا بودنم میاد تو؟ بس همین میکنه انس رضی الله عنه. حالا خودشان در حادثه بعدی خواحالون که موهای رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی تا لاله گوشش بود، گاه روی دوش، نگاه نرسیده به دوش، روی دوشاش. این بس به موهای رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. خب بلاخره انسان موهاش گاهی بلنده، کوتاه. کتاهه. بعثه الله تعالی على رأسی 40 سنه. در سن سالگی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث شدند به ابلاغ دیگ. انتخاب شدن برای پیغمبری. مبعوث شدن انتخاب شدن برای پیغمبری در سن سالگی. رسول الله صلی الله علیه سالی به دنیا اومدن عام فیل قصهش و داستانش میاره الله جل و علا در قران ابراهیم یاد با سربازانش که کعبه رو خراب بکنه عامو سال بود که رسول الله صلی تولد میشه لو الله جل و علا شر اونها رو کم میکنه فیلها و اون سربازان لشکریان رو همه الله نابود میکنه و این کرامت ی خاص برای رسول الله صلی اللہ هم کعبه حفظ شد هم پیغمبر الله جل و علا رسول حفظ میشه و در سن 40 سالگی هم مبعوث میشه به پیغمبری فاقام بمکه 10 سنین ده سال در مکه میمونه حالا این گاهی کسر عدد کوچک رو حذف می کنه بعضی از راویان در اصل رسول الله صلی علیه و آله 13 سال در مکه بودند اینجا اون عدد کسر 3 حذف شده اینجا گفته 10 سال در مکه بودند اکثروا گفته اون کسر رو حذفش کرده اون 3 رو حذفش کرده صحیح اینه که رسول الله علیه و آله سال در مکه بودند و 10 سالم در مدینه و در سن 63 سالگی فوت میشن که اینجا هم گفتم بازم آخرش هم کسرش رو حذف میکنه میگه بتوفاه الله تعالی على رأس 60 سنه که الله هم رفاتش میده در سن شهست سالگی که در اس شهست و سه سالگی است بخاطر همین در بعض از روایتها آمده قام ابی ها ثلاث عشر سنه سیزه سال سن. در مکه بودن اون باید کامل میاره و همچنین اینجا و توفاه الله در روایت دیگر آمده و هو ابن ثلاث و ستین که رسول ها سام شهست و سه سال داشته و لی سفی رأسیه و لخیتیهی عشرون شعبتا و در بیس عدد تار مو هم سفید نبودن میشو مردن. چند تا تار موش سفیده دقت اصحابه حبشون برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. با دقت نگاهش میکردن با دقت وصف چهرش میکردن ابروش شطور بود بینیش شطور بود دهانش شطور بود الله من خودم مثلا وقتی که این حدیث رو میکنم خب چقدر صحابه شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بودا انتقادة بدقة نيوجة كما حتى انتقاده مغاو مثل سفيدة شماشves انشاء حرب محبته وعزتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال باسحابي اورانا رسول الله صلى الله عليه وسلم دومين حديث امام tharmisi رحمه الله ميقويات حدثنا حميد ابن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة. ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفؤ حديث بعض أصنادش صحيح بعض أصناد عناس بن مالك رضي الله عنه ترى لماذا أصناد حديث أصناد عناس بن مالك رضي الله عنه كون تخوني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزرق شده غلامی می میکرد برای رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشته بود برای اینکه خدمت رسول الله صلی الله علیه بکنه شب و روز با رسول الله صلی الله علیه و سلم. بود. همین با این دقت دانه بهمون بس فر رسول الله صلی الله علیه و میگه و غیر از این که انص عمرش هم طولانی بود رسول الله صلی تو طول عمراش کرده بود. از الله خواسته بود که عمرشو فرزندش و مالش الله زیاد بکنه. و جز معمرین یعنی سال بعد رسول الله سلم زنده از زنده یا کمتر. همین زیاده. خب بریم به سخنانی که اناس رضی الله عن در مورد رسول الله صلی اللہ وسلم گفتن و بس فشکردن کنه رسول الله صلی اللہ وسلم ربعه ربعه در ربعه برابن نعازب داشتیم مربوعن مخصود اون وسط بودن قد و قباره هست نه دراز و بلند بود و نه کوتاه. بغتر همین این ربعه بودن یا مربع بودن مربع بودن و وصفش میکنه مربع فکر نکنید که چاق گرد مانندی یا مربع مانند باشه خصوصا چارشانه بودن دیگه رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاطر همین میخواد این ربع بودن مربع بودن یا مربع بودن رو میخواد بسفش بکنه که چطور بود ليس بالطويل لا بلند قد بلند لا قر ولا نه هم قدش شكوته بود قدی متوسط داشت قامتی متوسط داشت الله صلی الله عليه و سلم حسن الجسم الله جل وعلا جسمی قامتی خوارعی زیبا بهش داده بود قشنگ بهش داده بود اندامش زیبا بودن. یعنی غیر از چهره رسول اساس زیبایی اندامش رو داره میگه حالا خصوصا در بعض از روایت دیگه این قضیه بیشتر توضیح داده میشه برای ما مثلا حتی بازوهاش چطور بودن موهای سینه‌اش موهای نمیدونم چهرهش غیر ابروهاش همه اینها با دقت بیشتری خواهیم خوند انگار که رسول الله صلی الله علیه و سلم کنارمون نشسته یعنی اینطور با دقت اصحاب یاران بهمون رسول الله صلی الله علیه و سلم واسطه کرده و بدون شکم. هی جسمی متعادل‌تر، زیباتر از رسول الله صلی الله علیه و شما ندارید. هیچ جسمی، هیچ فردی. الله به زیبایی رسول الله صلی الله علیه و آله خالق چه از اخلاقش و چه از خلقتش، از تنو جسمی که الله جل و علا او را بر آن آراسته کرده بود. بخاطر همین ما خواهیم داشت که صحابه وقتی که رسول الله, رسول الله صلی الله علیه و آله واسمی می‌کردن هیچ چیزی در کون از او زیباتر نیست. هی چیزی نگفتن هیچ فردی ها میگفتن هیچ چیزی حتی ماه و حتی اون گل و ان که بر روی زمین شما دارید هیچ کسی هیچ چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم زیباتر و قشنگ تر نیست قشنگیش هم تو چهرشه هم تو تعاملشه هم تو جسمشه کامل ترین اوصاف را الله در رسول الله صلی علیه و سلم گذاشته بود کامل ترین اوصاف خلقی بدنی الله در رسول الله علیه و سلم گذاشته در کامل ترین وجه این بنده خودش را بر اون آراسته کرده بود چون خاتم النبی اینه ختم نبوت کرده اومده در پیغمبری رو ببنده اومده دین الله را کامل بکنه دیگه حجت تمام بشه بر خلق الله جل و به بخاطر همین کمال خلقش و اخلاقش و خلقیش الله در نظر گرفته خلقش و خلق و اخلاقش همه اینها را الله در نظر گرفته برای حفظ دینش برای کسی دیگه بحانه نتراشه بگه که این ای بی بي بتراشه بگه این زیبانیست این قشنیست این نبیدن سیاهه این نبیدن فلانه کسی ای بی تو زهرش دیگه نیاد کاملترین اوصاف را الله جل وعلا رسول الله را رسول الله علیه وسلم بر اون آرسته کرده بود و شعر شعره لیس بجعد و موهای رسول الله صلی الله علیه وسلم فر نبود جعد در هم پیچیده نبود جولیده نبود ولا سبط سبط لخته و صف موهای رسول الله و لخته هم نبود هنا أمده در روايات أسمر اللون إذا مشه يتكفأ لما من رواته روايات بعض الأشياء الله خصوصا نيازه كنار رواياته ديگر بياري هنا وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشه يتكفأ أسمر اللون در ديگر رواياتها كه حديث نقشده براي ما ديگر روابيان أوردن أزهر اللون حمید اینجا اس انس نقل میکنه اسمرالل که مغایرت داره با وصف برا و وصف دیگر راویانی که حتی خود انس اونهایی که از انس نقل کردن بیشتر راویانی که از انس نقل کردن گفتن ازهرالل نه اسمرالل حالا شاید اشتباه هم تو بحث کتابت باشه یعنی بعضی از علما چون تو بحث نوشتن قبلا نقطه گذاری و حرکت گذاری نبود شاید تصریف شده برایشون این روایت در اصل بوده ازهر خوندن اشتباها اسمر. این اشتباه شده باشه، شادم، اشتباه شنیده باشه راوین، الله اعلم. ولی خب بدون شک وقتی که روایت‌ها رو کنار هم بذاریم، حتی خود این روایت بیشتر راویان از انس اینجوری روایت کردن که انس وصف کرده رسول الله صلی الله و سلم به شکوفا بودن و روشنی بودن چهرش چهره روشنی داشتن، نه اینکه سبز رنگ بودن، یعنی رسول الله صلی سبز الله سبزه بودن، چنانچه اینجا آمده. در اصح همون والله عالم همون و علم از هر ازهر لوم باشه یعنی چهره شکوفه و درخشان داشتن رسول الله صلی الله علیه وسلم و وصف رنگش که گفتیم در دیگر روایت ها آمده سفیدی مایل به سرخی اذا مشه یتکفع اذا مشه زمانی که راه ره ره رفتن رسول الله صلی الله علیه وسلم چنان بود انگار که از سرازیری میان پایین یعنی سری میرفته حالا میاد در بعض از روایت من آ انگار که از بلندی داره میاد به پایین رسول الله سلام تند راه میرفتن و انگار مثل یک کشتی که داره موج میزنه یعنی در وسط موج، لابله موج، موجها را میشکفه یعنی های بزرگ و درشتی بر میداشتن و سر هم پایین میداختن سر بالا راه نمیرفتن، همیشه سرشون پایین بود، به زمین بیشتر بود تا به آسمان حالا میاده، گفتم در ها قشنگ این قضیه به من توصیف شده راه می رفتن سر و پایین می‌انداختن yani و انگار کشتی آن که دارن داره موجود دریو داره میشکافه یعنی سر به پایین داره حرکت میکنه با اون های بلندش این وصف راه رفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم با این دقتی که صحابه دارن بهمون نقل میکنن خب بریم به سومین حدیث امام ترمذی رحمه الله می گوید حدثنا محمد بن بشار یعنی العبدی قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابی اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيته شيئا قط أحسن منه الله أكبر خيلي جولب قشان حدیث را خاتمه میده اینجا بر ابن از وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم از وصف بدنی و از وصف جسمی رسول الله صلی الله و سلم زیبای و زیبایی و آراستگیش بر ابن عاصب چنانچه داشتون اونجا اشاره کردیم فقط به بحث چهار شانه بودن رسول الله صلی و رسول الله و سلم میگید وصف میکنین چینی رسول الله صلی الله و سلم میگه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم رجلا مربوعه مسق له اناسی قابلان داشتیم رسول الله و سلم قوارش متوسط بود نه بلند و نه هم کوتاه و چارشان هم بود وسط بود و چهارشانه هرچند که به بلند بودن بیشتر نزدیک بود تا به کوتاه بودن چون به خاطر همین اونجا گفتیم قامتش زیاد بلند نبود یعنی قدش بلند بود ولی که زیاد بلند نبود کوتاه که اصلا نبود پس یک بلندی در قامتش بود علیه الصات والسلام بلندی در قامتش بود با اون چهارشانگی که داشت به همین به خاطر بودنش بلند بودن قامتش به چش نمی اومد خصوصا انکر اساسا دست و پاش ظریف نبود که انگشتاش انگشته پاهاش دستش ظریف نبود درش بود دستاش انگشتاش حتی مفاصلش هم صاحب بس میکنن که مفصل پاهاش و زانوهاش درش بود یا کوچک بود اینا هم بس میکنن که خواهیم داشت اینجا در این احادیث قشنگ به ما بس میکنن رسول الله الله علیه و سلم. بعید ما بین المنكبين دو طرف شانه هاش از همدیگه فاصله داشت یعنی حریص بود شانه‌ی عریزی داشت، کتفش عریز بود، شانهای راستش هم درشت بود، عریز بود عظیم الجمه الى شحمه اذنيه، عظیم الجمه، الجمه موهای سره بس به موهاش هم که داشتیم، موهاش نه صاف بود، نه لخته بود و نه هم موهاش در هم پیچیده، بلکه موهای با یک انعطاف کمی، انعطافی داشت، پیچیدگی داشت ولی خیلی کم، موهای رسول الله صلی الله علیه و سلم تا لاله گوشش بود، تا نرمه گوش، یعنی موهاش هم الا اینجا که برای دیده در این وصفی اینجا در وصف میکنه بیشتر اوقات موهای رسات اینجا بود که گاهی هم موهاش بلندتر از اینم میشد به شانه هاشم میرسید روی دوش هم میومد علیه حلتون حمراء عليه حلتون حمراء رسول الله صلی اللہ گاهی جامعه قرمز رنگ میکوشید نه قرمز خالصا جون رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث داریم که از قرمز خالص نهی میکنه چنانچه در حدیث داریم نهی النبی صلی الله علیه و آله عن المیاثل للحمر و السرخی که خالص باشه منع کرده رسول الله صلی الله علیه و آله ولی سرخی و قرمزی که آمیخته باشه, باشه با سفید با سیاه مشکلی توش نیست و رسول الله صلی الله علیه و آله میگه زیباترین لباسی و جامعه ای که میپوشید اون جامعه قرمز رنگ بود جامعه که حالا قرمز با سفید قاطی بوده حالا شالش بوده که بر سر مینداخته یا عمامش بوده یا پیراهنی که چون خصوصا جمعه دو تیکه هست یه لباسی بر دوش مینداختن و یه لباسی پایین دو تیکه بود یا شلوار پایین میپوشیدن یا ازار که بیشتر اوقات این بود نزد عرب یه قمیسی بالا میپوشیدن با یه لنگی پایین ازار بهش میگن حالا میاد که ازار رسولان الله صلی شلواری که اگر گاهی میپوشیدن تا کجا بودم اونم خواهد اومد از وصفش پس این جمعه که از دو تیکه لباسه یکی از اون تیکه هاش آمیخته به قرمزی بود یعنی قرمز خالص هم نبوده بلکه قرمزی برش غلبه داشته یا سرخی برش غلبه داشت. و رسول الله صص در اون لباس خیلی زیبا دیده می شده یعنی اون لباس براش خیلی میافتاده. یعنی مثلا میگن فلان رنگ رو میفته. اینجا هم برابن اعظم چنین بس میکنه بهترین لباسی که میپوشید، خیلی یعنی خوشش اومده بود از این لباسی که رسول الله ص پوشیده توش میگه این لباس قرمزرنگه. ما رایتو این بس شما دقت بکنید توش ما رایتو شیئا قط احسن منه. الله اکبر. ششمان هرگز. چیزی چیزی هیچ چیزی قشنگتر از او ندیده بوده. هیچ وقت هرگز چشمم قشنگتر از رسول الله صلی الله علیه و آله هیچ کس رو ندیده هیچ چیزی رو ندیده نه کسی هیچ چیزی قشنگتر از رسول الله چشمم ندیده چشمم قشنگتر از رسول الله صلی و آله ما رایت شیئا قط احسن منه نگفت هیچ کس گفت هیچ چیزی یعنی نه ماهش نه خورشیدش هیچ خلقی از خلایق نه حیوانش بگیم آهو به قشنگیش و زیباییش نه اون پرندش هیچ چیزی در این مخلوقات به قشنگی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبود و چشمم ندیده این کمال چیه؟ کمال وصف خلقی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم اونچنان که این صحابی داره بهمون نقد نقل میکنه هم خلقت بدنیش هم چهره زیبا و قشنگش که صحابی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ازش سیر نمیشدن از هر موجودی از هر کسی او را زیباتر می‌دیدند و الله هم جل و علا او را زیبا کرده بود هم با اون چهره زیباش و هم به اون اخلاق والاش اخلاق درستش و اخلاق که همه جذب و شیفته او می‌شدند و گفتیم دیگه چقدر صحابه خوشحال شدن و خود رسول الله ص خوشحال میشه زمانی که در مرض وفاتشون در خونش رو باز میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم در باز میکنه و صحابه رو می‌بینه کنار هم دیگر پا به پا و شانه به شانه ایستادن او وکر صدیق رضی الله عنه میخواد پا قبک کشه پس بکشه کرسال صلیح سلام بیاد پیش نماز بشه کرسال صلیح سلام لبخندی میزنه خوشحاله از این جمعی که این چنین یک پارچه یک دست کنار هم دیگر سفت و محکم ایستادن همه لبخند میزنن سر نماز از خوشحالی کرسال صلیح سلام میخواد بیاد باشه نماز و روی پاهش ایستاده و لبخندی بر شهرش چهره ای که از ما هم درخشانتر و زیباتر بود. وقتی میبینن خوشحال میشن رسول الله صلی الله علیه و آله خوشحال میشه که این اصحاب یارا میبینه که این چینین عزتی هم الله داده هم به اسلام و مسلمان ها هم به خود رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحاب یارانش چقدر حبش داشتن چقدر بهش علاقه داشتن چقدر شیفتش بودن ابن ممدتم اومد گلایه کرد گفت که راه هم دوره بارون هم میان دلش هم نمیخواد نماز برا صلی قط بشه یک نماز ازش فوت بشه یا رسول الله اجازه هست که مثلا نماز اون یک بدی که بارو میاد راهو قط میشه نماز و نیام دلش هم نمیاده که نماز نیاده اجازه هست رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه خب بار اومده راه هم شد شده تو هم نابیناش کار نداره یا رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه صداش بزنید بیاد بعد که اون مکتوب میاد میگه هل تسمع النداء صدای عزون به میاد گفت که بله قال اذا فاجب اجابت کن دلش هم نمیادا. داره سوال میپرسه در حرج افتاده بار اومده راه هم قطع شده بزری برام هست میگینه صدای ندای از آن میاد گفت که بله گفت پس بس اجابت کن بنو راهشون دور بود بیش از ده کیلومتر الان سرزمینشون هست تو مدینه دانشگاه مدینه دانشگاه اسلامیش اونجا ساخته شده مسیر تقریبا نزدیک به ده کیلومتر شاید بشه تا خود مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله. حالا قبلا تپه و کوه و نبیدنم. در دره و اینا بود که الان برداشته شده ولی خب قبلا شما در اثر می‌گیرید پسی و بلندی‌های زمین برای اینکه نمازشون فوت نشه پشت سر رسول الله صلی الله علیه و آله این مسیر رو هر روز می‌اومدن. دیگه برایشون سخت شده بود، دشوار شده بود که این همه مسیر رو هر روز بیان. ده کیلومتر حساب اون پیاده هر روز باید بیان. اونم با پسی و بلندی راه و دره و کوه اینها همه باید طی بکنن. بعد که اومدن از رسول الله صلی علیه و اجازه گرفتن که خونه و کاشانه خودشون اون و مکان و منزلگاهشون بیارن نزدیکتر بیارن نزدیک حرم بشن نزدیک مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله میگه دیارکم توک رو کن زمینتون که هر روز داشتید رد می‌شدید آثار شما رو حفظ می‌کنه اون ذکری که می‌گفتید اون قدم هایی که بر داشتید برای نماز اومدن اون مسیر دلشون برای تو تنگ میشه اون سنگ‌ها که می‌شنیدن ما کنید؟ الله جل و علا. یک قدرتی در مؤمن گذاشته که انسان نمیتونه درک بکنه. الله جل و علم نمونه هاشو در قرآن میگه مثلا داوود وقتی که تسبیحش میگفت کوه هم باهاش تسبیح میگفت این قدرت مؤمنه این جلوه مؤمنه و ایمانش. رسول الله صلی الله علیه و سنگه تسبیح میگه در دستش صحابه هم میشنوه درسته معجزه بوده ولی که الانم اونطوری که ما نمیشنویم اونها نوتو دارن تسبیح دارن ذکر دارن قدم هایی که تو برمیداری به طرف مسجد همه برات حفظ میشه روز قیامت همه اینها در و دیوار غیر از فرشتگان الله برای تو روز قیامت گواه میدن این دیوارها گواه ما هستن که اینجا نشستی غیرت دست و پا و پنجه هایمون و قالوا لجلودهم لشهدتم علينا قالوا ان تقن الله الذي انطق كل شيء همه اینها گواه خواهند داد اینها را شما نادیده نگیرید کم نگیرید پن الله وقتی که بحث رسول الله صلی الله علیه و سلام بشه راسش انسان سیر نمیشه ما که فقط احادیث رو داریم میخونیم از وصفش چه بر سر صحابه گذشته کسانی که باها شب و روز بودن چه بر سرشون گذشت اون روزی که شدیدن که رسول الله صلی سلم فوت شده از دنیا رفته ما اینقدر شیفته ی حرفشیم شیفته ی چهرشیم بدونیم چطور بوده وصفش بدنش تنش چطور بوده اونها که شب و روزشون باهش بودند بلند نشودن می و میومدن صداشون میشنیدن با اون قرآن، با اون تلاوتش با اون حرف و سخنش بر سر منبر مینشست با سر اونها چی گذشت به خاطر همین رسول الله (ص) میگه در مصیبتی بر شما اومد کسی عزیزی ازتون فوت شد بیاد مرگ من باشید که از من دیگه براتون کسی نیست عزیز سر از من دیگه براتون کسی نیست نگه پدری برادری خواهری ی برادری از دستادی بیاد مرگ من باشید. شما منو از دست دادید دیگه عزیز از من دیگه کسی هست برای شما هرچند الان اون ایمان دیگه اون ایمانی که رسول الله داره الله علیه و آله در این بهشون این خطاب را داره میگه الان دیگه اون مؤمنین نیستن اون مؤمنین ضعیف شدهن اون شیفتگی دیگه نیست در مؤمنین اون شیفتگی به علاقه‌مندی نسبت به رسول الله صلی و اون حبش در دلها ضعیف شده چراحی هست برای اینکه این حب شیفتگی دوباره زنده بشه دوباره در نفس ما شکوفا بشه هیچ چیزی جز خوندن احادیثش و بسش نیست اینها هست که قلب ما زنده میشه به ایمان ما باون شکوفا میشه ایمان ما باون زیاد میشه چارو مین حدیث قال ترمذی رحمه الله امام ترمذی رحمه الله میگویات حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وكیع قال حدثنا سفیان حنبي اسحاق عن البراء بن عازب رضی الله عنه قال ما رأيت من ذی لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل إن رواية الدكاري هاساس برا كفاس برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ندي دام ما رأيتم من ذي لما لما مهي که کسی که موهاش از لاله گوشش بیاد پایین الان برسه به شانهاش یا نه یعنی موهایی که از لاله گوشش بیاد پایین فی حلت همراه الان وصف الله سلام میکنه موهاش و لباسش میگه ندیدم کسی با این چهره با این موها و با این لباس لباسی قرمز رنگ که گفتیم قرمز خالص نبود احسن من الله سلام زیباتر از رسولا سلام خوبتر و نیکوتر از رسول الله سبحانه هیچ کسی رو ندیدی بودم له شعرون وصف موهاش داره می کنه لهو شعرون یدربو من کبهی موهایی داشت بلند که از لاله گوش پایین اومده بود می اومد روی دوشاش روشانش بعید ما بین المنکبهشانه هاشم عریز بود چارشانه بود رسول الله سبحانه لم یکن بالقصیر ولا بالطویر نه قدش کتا بود و نه هم قد بلند زیاد. قدش. متبسته وقادر الصدق صلى الله عليه وسلم. آخر حديث يوم روزمون حديث إمام ترمزي رحمه الله ميجويات حدثنا إمام ترمزي رحمه الله ميجويات حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم شيء شمعين عن حديثا همي الروايات إمام التنبيد رحمه الله مجدد سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعنى يعني إن حديث با اسناد مختلفی روایت شده که دو تا اسنادشو اینجا یاد میکنه همین حدیث با دو تا اسناد همین متن لم یکره نبی صلی الله علیه و ولا بالقصير فی رسول الله صلی الله علیه نه قدش قامتش زیاد بلند بود و نه هم قدش کوتاه یعنی متوسط بود اینجا اومده شفن الكفين والقدمين شفن اینکه رسول الله صلی الله انگشتان پاهها و دستش دروش بود نه اینکه سفت و خشن بود نه درشتی دلالت بر سفتی و خشنی نمیده چون در بحث داستان رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دستی که من بهش دست دادم دستی خیلی نرب از پارچه حریرم نرم‌تر بود ولی خوب دروش بود و سخانه رسول الله صلی الله علیه بزرگ بود کوچک نبود باریک نبود دست و پای رسول الله صلی علیه و سلم. سر رسول الله صلی الله بزرگ بود الان یاد سر رسول الله صلی الله که نزدیک به دایره بود دایره نبود حالا اونم خواهد اومد سر رسول سری بزرگ سرش بزرگ بود کرادیس به مفصل ها گفته میشه خوصا زانوها مفصل پا مچ پایی که مفصل ساق بهش شسبیده مفصل دست بزرگ بود مفصل هاش بزرگ بود باریک نبود یعنی اینقدر با دقت دارن صحابه وصف رسول الله رسول الله وسلم وصف جسمیش دارن میکنن حالا چی میخواد بگی این صحابی خواهیم گفت علی بنوی طالب ها رضي الله عنه ذره بس فرصت الله سلام میکنه از حیبتش از طویل طويل المسربه موهای که روی سینهش بود از سینه بود تا نافش جلوه سینش بود ولی که روی سینه هاش دیگه نمیومد یعنی از بغلش الله خواهد اومد ان الله اونم خواهیم گفت یعنی موهای رسول الله صلی الله درست که مثلا روی سینش مو بود ولی خب سینه اگر ما بخوام تقسیمش بکنیم شکم داریم قفسه سینه داریم وسط سینه داریم وسط سینه مو بود ولی غلاش دیگه نخوستن روی حالا مرد و زنش که پستان دارن اونجا دیگه موی نبود روی سینه رسول الله صلی الله علیه و سلم آقا گفتم این تقسیم بندی بخوام بکنیم حالا میاد ان شاء الله رسول الله صلی الله علیه و سلم موهای بدنش هم زیاد نبود بدنش کم مو بود الا الا اینجا که اینجا علی بن نبی طالب داره واس میکنه چون رسول الله صلی و احرام می دیگه خب وقتی کسی احرام پوشیده دیگه موهای تنش میبینن حالا بس میکنه روی شانهاش مو بود ولی زیر هاش مثلا الله چقدر مو بود اینا یا روی سینه هاش اینا همه دارن وسپش میکنن به ما میگن تا اینکه ما تصوری کامل داشته باشیم پس روی سینه رسول الله صلی الله علیه و آله مو داشتن ولی نه موی غلیظ اذا مشى تكفأ تقریباً داشتیم تکفأ تکفؤا کانما من, من قدمهاش قدمی بزرگی بود و انگار که از یک انحداری دارم میان پایین از سر بالایی میان پایین بعد میگه لم ارى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم ندیده بودم و نهم بعد از ایشان کسی دیدم که مثلش انچنين زیبا و قشنگ باشه چشمم به کسی به زیبایی این فرد این پیغمبر الهی هیچ کس ندیده علی نبی طالب رضی الله عنه داره میگه هیچ کسی را به زیبایی و قشنگی رسول الله ندیدم ندیدم نه دیدم قبل از ایشان و نه بعد از ایشان هر کدوم از اصحاب یک جلبه و یک شکوهی از رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم به همون مخ الله جل و علی در پیغمبرانش یک حیبتی گذاشته اینجا شما در این وصف علی ابی طالب امیر المومنین دارید که از دست و بزرگی دستش و مفاصل بدنش یاد میکنه و الی آخر از آراستگی تنش تنی آراسته داشت الان خرشن که میاد در دیگر احادیث که رسول الله صلی شکمی گنده هم نداشت بلکه شکمش با سینه هاش آراسته بود نه هایی هم زخمی داشت مثل الان که بدنسازا میرن سینه‌هاشون درش میکنن یا الی آخر نه رسول الله صلی الله علیه و آله سینه متوازن و آراسته‌ای داشت با شکمش الله جل و علا در قرآن وقتی که مدح پیغمبرانش رو میکنه و کسانی که به پیغمبری بر بی‌گوزینه گوزینه ش الله جل و علا برای مقام نبود اشخاصی بودن قوی از لحاظ جسمی و هم از لحاظ عقلی الله جل وعلا میخواد بگه این دو تا هر دو مطلوبن یعنی هر دو تا باید مؤمن داشته باشه مثلا در بحث ابراهیم اسحاق یعقوب الله جل وعلا میگه و اذكر عبادنا ابراهيم و ويعقوب قلوا الايدي قلوا الايدي والابصار قلوا الايدي نیات کن از ابراهیم اسحاق یعقوب که اینها چی بودن اینها زور داشتن اول الايدي بودن دست به کار داشتن دستان قوی داشتن اهل کار بوده قدرت جسمی داشتن کار میکردن قوت تنیشون داره الله یاد میکنه اولو الای یعنی قوت و قدرت تنی جسمی داشتن والابصارم بصیرت علم دانشه. این دو برای الله جل وعلا خیلی مهمه مثلا شما در قصه تالوت دارید قصه تالوت انتهایی سوره بقره الله جل وعلا میزنه برای بنی اسرائیل برای اینکه نصرت پیدا بکنن اونا توقع داشتن یک پادشاه، پادشاهی یکی انتخاب بشه که بالاخره خودشون می‌خواستن بعد الله جل وعلا تالوت رو انتخاب میکنه براشون بعد میگه که چرا تالوت براشون وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملك قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال شخص نیست. دورینیس چطور فرما راه وای ما بشه چطور ولی ما بشه چه جواب میده پیغمبرشون میگه زاده و بسطه في العلم والجسم الله جلاله به طالوت زیادی و قدرت تنی و جسمی و عقلی داده زاده بسطن فی العلم درک فهمه و جسم دانش به انسان قدرت میده شمایی که اینجا میشینید تفاوت دارید کاملا با اون کسی که تو حلقات علم نمیشینه شما قدرت فهم درکتون به زندگی به دوربرتون بیشتر میشه برخلاف اون کسی که ضعیفه قدرت نداره، ضعیفه، نمیدونه چیزی از زندگی، با زنش مشکل داره، با بچهش مشکل داره، با خواهر برادرش مشکل داره، نمیتونم مشکلاتش حل بکنه. خب چطور حل بکنه چیزی از اساس اساساً و تعاملش و اون زندگیش نمیدونه. ما گفتیم دیروز سعادت منتر از رسول اساساً در زندگی با همسران شما نداری. من تو کنفرانس خانواده گفتم به خواهر همه خندیدن بر خودشون. گفتن نه تا زن با رسول رفتن حج، برگشتن همه هم سالم. یک زن مرد ازش سالم نیست. مرد با یک زنش نه این تحمل اینو داره نه اونم تحمل اینو داره هر دوتا به مرگ هم دیگر نه این تو دلش میگه خدایی که این میمیره این میگه که این میمیره احساس و خوشبختی و سعادت نیست چرا چون زندگی ما زندگی پیغمبری نیست ولی که قصد الله صلی با نه تا زن با اون حسی که زنا و غیرتشون دارن سعادت من بود خوشبخت بود خوشبخت بود این خوشبختی بوهتره من کتابی که نوشتم بعد توصیه میکنم برای خوندن و مطالعه کتاب نوشتم اسمش گذاشتم سرای سعادت اول بود منزل نبوت بعد عنوانش عوض کردم گذاشتم سرای سعادت منزل رسول الله ص یک منزله که اگر ما بریم درونش نگاه بکنیم میدونیم چطور رسول الله ص احساس سعادت داشتن با اون همسرانش خب تا نخونیم تا نریم به سیرت رسول الله ص با دقت نگاه نکنیم اون علم رو کسب نکنیم اون سعادت به دست نمیاریم سعادت رو تو پادکست بکنیم و با غیر از این راه تو نمیدونی کسبش بکنی باید بری بخونی باید مرید مطالعه بکنی فهمه از یه طرف این قدرت بهت میده توان بهت میده از یه طرف دیگر این کسب توان تو رو نزد الله عزیز میکنه من یورد الله بی خیرن یفقهه فی الدین یورد الله بی خیرن کسی که الله خیر خواشه فقه در دین بهش میده خب این فقه در دین وقتی که تو دنبالش رفتی و فقیه در دین شدی خب مسلما میشه چی بنده ای که الله نسبت به بود خیرخواه بوده تو رفتی و کسبش کردی و با الله نزدیک شدی و این گفتم تو هستی که کسبش میکنی حتی همین مسجد رفتنت، اومدنت صبح بلند شدنت اینا همه قدرت جسمیت همون تجدت به پایستادر اینها قدرت و توان جسمیت بالا میبره. اینا رو کم نگه درست وجه منبدودی برای الله می ولی که همون کارم که ما انجام میدیم توان ما را بالا می لیاقت لیاقت و تنی ما را بالا میبره و فکری و عقلیمون ما دو تا دختر اومدن سرچههایی آبی بکشن. الله جل الا پیغم هم اونجا. فقیر دعای هم میکنه به درگاه الهی رب یعنی لما نزلت الیه من خير فقیر و جانش هم میکنه شخصی تنومند قدرتمند از لحاظ علمی جسمی حالا من چی میخوام بگم در این قصه پیغمبر الهیه بی پول بی کس آواره بی زن، هیچی نداره امن و امنیتم نداره دنبالش فرام با سربازانش که هم نابودش بکنن ولی کرامت رو نگاه کن بندگی رو نگاه کن بندگی چه کار میکنه وقتی که انسان سیرت را میخونه سیرت چه پیغمبرمون علی صلوات الله چه دیگر پیغمبران و این جلوه و شکوه را میبینید کسی که به الله نزدیکه این دعا را میکنه کی مسخرش میشه دو تا دختر دو تا دختر پاک و نجیب که با شرم و حیا سر و پایین انداختهن میرن پیش پدرشون موسا را که میبینن بعد موسی کنار میزنه اون مردم را به آب برای دو تا دختر میکشه اون تا دختر چی میگن در باره موسی و سلام قالت احداهما ان خير من استاجرت الامی القوی قدرت جسمی داشت موسیٰ عليه ساته و امین و امانت داره با اون دین و دینداریش که دیده بودن اون تا دختر مردم میبینن بحث دیدنه ادعا نیست این دین و دینداری به ادعا نیست به عمله به عمله نماز سنت به عمله نماز فرض به عمله از کارت به عمله این قدرت میخواد تو باید قوی باشی در چه در گرفتن دینت، در پایبندی به دینت و در عمل به دینت و چه در یاد گرفتن از وقت گذاشتن اینا قدرت قویه، الله جل و مؤمن قوی را بیشتر دوست داره از مؤمن ضعیف این قوته، چه قوت در فهم و گفتیم و چه قوت در جسم و این جلوه و شکور را علی ابن از رسول الله یاد میکنم این جلوه و شکور در جسمش، در تنش، ای مؤمن ضعیف نباش، اهل تحرک باش، اهل جدک و شش باش. اینها به ما داره یاد میده که این مؤمن باید این باشه یعنی و این چیز را در رسول الله صلی الله علیه می و میبینه و به ما داره بازگو میکنه خب سبحانك الله وبحمدك سبحان الله وبحمده و صلی الله علی محمد و علی محمد